مصنوی معنوی مولوی برنامه یک قصه باز پادشاه و کمپیر زن باز اسپیدی و با کمپیری دهی او ببرد ناخونش بهر بهی ناخونی که اصل کار است و شکار، کور کمپیر ببرد، کوروار. که کجا بوده است مادر که ترا، ناخنان زینسان دراز است ای کیا؟ ناخن و منقار و پرش را برید، وقت مهر این می کند زال پلید. چون که تتماجش دهد او کم خورد خشم گیرد مهرها را بردارد که چونین تتماج پختم بهر تو تو تکبر می نمایی و او تو تو سزایی در همان رنج و بلا نعمت و اقبال کی سازد تو را آب تتماجش دهد کین را بگیر گر نمیخواهی خواهی که نوشی زان فتیر. آب تتماجش نگیرد طبع باز، زال بترنجد شود خشمش دراز. از غضب آن آش سوزان بر سرش، زن فرو ریزد شود کل مغفرش. عشق از آن چشمش فروری زد ز سوز، یاد آرد لطف شاه دلفروز. زان و چشم نازنین با دلال که ز چهره شاه دارد صد کمال. چشم مازاغش شده پر زخم زاغ، چشم نیک از چشم بد با درد و داغ. چشم در یا بستته که از بست او هر دو عالم می نماید تار مو. گر هزاران چرخ در چشمش رود، همچو چشمه پیش قلزم گم شود. چشم بگذشته از این محسوس ها یافته از غیب بینی بوز ها. خود نمی یابم، یکی گوشه که من نکته گویم از آن چشم حسن میچکید آن آب محمود جلیل می ربودی قطره اش را جبرائیل تا بمالد در پر و منقار خیش گردهد دستوریش آن خوب کش باز گوید خشم کمپیر فروخت، فر و نور و علم و صبرم را نسوخت. باز جانم، باز صد صورت تند، زخم بر ناقه نبر صالح زند. صالح از یک دم که آرد با شکو، صد چنان ناقه بزاید متن که. دل همه گوید خموش و حوشدار ورنه در رانید غیرت پود و تار. غیرتش را هست صد حلم نهان ورنه سوزیدی با یک یکدم صد جهان. نخوت شاهی گرفتش جای پند تا دل خود را زبند پند کند. که کنم با رای هامان مشورت کوست پشت ملک و قطب مقدرت مصطفی را رایزن زن صدیق رب رایزن زن بو جل را شد بو لحب. ارق جنسیت چنانش جذب کرد کان نصیحت ها به پیشش گشت سرد جنس سوی جنس صد پره پرد بر خیالش بندها را بردارد قصه آن زن که طفل او بر سر ناودان خزید و خطر افتادن بود و از علی کرم و وچه چاره چارج یک زن آمد به پیش مرتزا، گفت شد برناودان طفل مرا. گرش می خانم نمی آید بده است، ورحلم ترسم که افتد او به پست نیست عاقل تا که دریابد چما گر بگویم کس خطر سوی منا هم اشارت را نمیداند بد به دست بداند نشنود این هم بد است بس نمودم شیر و پستان را بدو او همه گرداند از من چشم و رو از برای حق شماید ایمهان دستگیر این جهان و آن جهان زود در من کن که میلرزد دلم که درد از میوه دل بکسلم گفت تفله را براور هم ببام، تا ببیند جنس خود را آن غلام. سوی جنس آید سبک زن ناودان، جنس بر جنس است عاشق جاودان. زن چنان کرد و چودید آن طفل او جنس خود خوش خوش بدو آورد رو. سوی بام آمد، زمتن ناودان، جاذب هر جنس را همجنس داند. غشغجان آمد، و سوی تفل تفل، و رهید او از دادن سوی سفل. زان بود جنس بشر، پیغمبران، تا به جنسیت رهند، از ناودان پس بشر فرمود خود را مثل کم تا به جنس آیید و کم گردید گم زانکه جنسیت عجایب جاذبست است جنس است هر جا طالب است ایسی و ادریس برگردون شدند با ملایک چونکه که هم جنس آمدند باز آن هاروت و ماروت از بلند جنس تن بودند زان زیر آمدند کافران هم جنس شیطان آمده جانشان شاگرد شیطانان شده صد هزاران خوی بد آموخته دیده های اقل و دل بردوخته کمترین خوشان بزشتی آن حسد آن حسد که گردن ابلیس زد زانسگان آموخته حقد و حسد که نخواهد خلق را ملک عبد هر را دید او کمال از چپ و راست از حسد قولنجش آمد درد خواست زانکه هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته هین کمال دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی بغم از خدا میخوا دفع این حسد تا خدایت وارهاند از جسد مرترا مشغولی بخشد درون که نپردازی از آن سوی برون جرعه می را خدا آن می دهد که بدو مست از دو عالم می رهد خاصیت بنهاده در کف هشیش کو زمان می رهاند از خودیش خواب را بدانسان می کند که از دو عالم فکر را برمی کند کرد مجنون را ز عشق پستی کو بهنشناسد ادو از دوست صد هزاران اینچنین می داردو که بر ادراکات تو بگماردو هست میهای شقاوت نفس را که ز ره بیرون برد آن نحس را هست میهای سعادت عقل را که بیابد منزل بین را خیمه گردون ز سرمستی خیش برکند زنسو بگیرد راه بیش هین به هر مستی دلاغر مشاو هست ایسا مست حق مست جاو این چونین میرا به جوزین این ها مستیش نبود زکوته دومب ها زانکه که هر معشوق چون خون بست پر، آن یکی دور و دیگر چودر. چ دور هین بچش با احتیاط تا می یابی منزه زختلات. هر دو مستی میدهندت لیک این مستیت آرد، کشان تا رب دین تا رهی از فکر و وسواس و هیال بی اقال این عقل در رقص الجمل انبیا چون جنس روحند و ملک مرملک را جذب کردند از فلک باد جنس آتش است و یار او که بود آهنگ هردو بر علو چون ببندی تو سر کوزی تهی در میان حوز یا جوی نهی تا قیامت آن فرو نآید پاست که دلش خالی است و در وی باد هست میل بادش چون سوی بالا بود، ظرف خود را هم سوی بالا کشد. باز آن جانها که جنس انبیاست، سوی ایشان کشکشان چون سایه هاست. زان که عقلش غالب است و بیز شک، عقل جنس آمد به خلقت با ملک، وان هوای نفس غالب بر ادو نفس جنس اسفل آمد شد بدو بود قبتی جنس فرعون زمیم بود سپتی جنس موسی کلیم بود جنس جنستر فرعون را برگزیدش برد بر صدر سرا لاجرم از صدر تا قعرش کشید که ز جنس دوزخند آن دو پلید هر دو سو زنده چو دوزخ زد نور هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور زان که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود برگذر که نورت آتش را رو بود بگذر ای مؤمن که نورت می کشد آتشم را چون که دامن میکشد. کشد می رمد آن دوزخی از نور هم زان که طبع دوزخ استش ای سنم دوزخ از مؤمن گریزد آنچنان که گریزد مؤمن از دوزخ به جان زان که جنس نار نبود نور او زد نار آمد حقیقت نور جو در حدیث آمد که مؤمن در دعا چون امان خواهد ز دوزخ از خدا دوزخ از وی هم امان خواهد بجان که خدایا دور دارم از فلان جاذبه جنسیت است اکنون ببین که تو جنسی کیستی از کفر و دین گر به هامان مایلی هامانی ور به موسا مایلی سبحانی ور به هر دو مایلی انگیخته، نفس و عقل هر دوان آمیخته. هر دو در جنگند، هان و هان بکوش، تا شود غالب معانی بر نقوش. در جهان جنگ شادی این بس است که ببینی بر عدو هردم دم شکست، آن ستیز رو به سختی گفت با هامان برای مشورت و های آن کلیم الله را. گفت و محرم ساخت آن گمراه را. مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السلام. موسیقی <موسیقی> گفت با هامان چو تنهایش بدید. جست هامان و گریبان را درید. بانگ ها زد. گریه ها کردان لعین. کفت دستار و کله را بر زمین که چگونه گفت اندر روی شاه این اینچنین گستاخ آن حرف تباه جمله عالم را مسخر کرده تو کار را با بخت چون زر کرده تو از مشارق و از مغارب بی لجاج سوی تو آرند سلطانان خراج پادشاهان لب همه مالند شاد بر ستانه تو ای کیقباد اسپ یاغی چون ببیند اسب ما رو بگرداند گریزد بی عسا. تا کنون معبود و مسجود جهان بودهی گردی کمینه بندگان در هزار آتش شدن زین خوشتر است که خداوند شود بنده پرست نه بکش اول مرا ای شاه چین تا نبیند چشم من بر شاه این خسروه اول مرا گردن بزن تا نبیند این مزلت چشم من خود نبود است مبادا این چونین که زمین گردون شود گردون زمین بندگان من خاجتاش ما شوند به دلان من دلخراش ما شوند چشم روشن دشمنان و دوست کور گشت ما را پس گلستان قره گور سخن هامان علیه دوست از دشمن همی نشناخت او نرد را کورانه کژ می باخت او دشمن تو جستو نبود ای لعین به گناهان را مگو دشمن بکین پیش تو این حالت بد دولت است که دوادو اول و آخر لت است گر از این دولت نتوزی خزخزان این بهارت را همه آید خزان مشرق و مغرب چو تو بس دیدند که سر ایشان زتن ببریدند مشرق و مغرب که نبود برقرار چون کنند آخر کسی را پایدار تو بدان فخرآوری که از ترس و بند چاپلو صد گشت مردم روز چند هر که را مردم سجود می کنند، زهر اندر جان او می آگنند. چون که برگردد از او آن ساجدش، داند و کان زهر بود و موبدش. ای خونوک آن را که زلت نفسهو، وای آنک از سرکشی شد، چون کوه او این تکبر زهر قاتل دان که هست از م پر زهر شد آن گیج مست چون م پر زهر نوشد مدبره از طرب یکدم بجنباند سره، بعد یکدم زهر بر جانش فتد زهر در جانش کند داد و ستد گر نداری زهریش را اعتقاد کوچه زهر آمد نگر در قوم آد چونکه شاه دست یابد بر برشه بکشدش یا باز دارد در چه ور بیابد خسته افتاده را مرهمش سازد شه و بدهد عطا گر نه زهر است آن تکبر پس چرا؟ کشت شهرا را به گناه و به بی خطا بیندگر را بیز خدمت چون نواخت و جنبش زهر را شاید شناخت راهزن هرگز گدای را نزد گرگ گرگ مرده را هرگز گزد خزر کشتی را برای آن شکست تا تو تواند کشتی از فجار راست چون شکسته می رهد اشکسته شو امن در فقر است اندر فقر راو آنکوه کو داشت از کن نقد چند، گشت پارا پارا از زخم کلند. تیغ بحر اوست، کورا را گردن است. سایه کفگنده است، بروی زخم نیست. مهتری نفت است و آتش ای غوی، ای برادر چون برازر می روی هرچه او همبار باشد با زمین تیرها را کی هدف گردد ببین سر از زمین آنگاه او چون هدفها زخم یابد بی رفو نردبان خلق این ما و منیست عاقبت زینرد بان افتادن است هر که بالاتر رود ابلهتر است کستخوان او بتر خواهد شکست این فرو استو اصولش آن بود که طرفو شرکت یزدان بود چون نمردی و نگشتی زنده زو، یاغی باشی به شرکت مالک جو. چون بدو زنده شدی، آن خود وی است. وحدت محض است، آن شرکت کی است. شرح این در آینه اعمال جو که نیابی فهم آن از گفت گر بگویم آن چه دارم در درون بس جگرها گردد اندر حال خون بس کنم خود زیرکان را این بس است بانگ دو کردم اگر در ده کس است حاصل آن بدان گفتار بعد، اینچونین راه بران فرعان زد لقمه دولت رسیده دهان او گلوی او بریده ناگهان خرمن فرعان را داد او باد هیچ شهرا این اینچونین صاحب Mabod.